الان وقتشه که هدفون‌ها رو بذارین. <تصفيق> راس اولبریک شخصیت اصلی این ماجرا، یه خود عجیبی هم داشت. پدرمادر مادر خیلی زود سری چیزایی میفهمید که لی برتاری بیشتر توی چند دهه اخیرم هستش که مطرح شده کم کم و... مدیر سایت تبدیل شد به یک صدای مهم یک نظریه پرداز توی سایت و وکیل آزادی های فرد واقعا یکی از عجیب ترین اتفاقات جهان بود میتونید خب هم اونجای که من بعد از چنین جمله ای بایده که خبر خوبی بیاد. اینجا هم خبر این بود که بهش گفت راستش من در اینکه داشتم بهت خیانت میکردم با مردای مختلفی بود از جمله ای که از یک کنفرانس خبری گذاشته دو تا سکرینشات بزرگ دوست. هم از سایت گذاشته پشت سرش و یک نطق قراری داره میکنه واسه خبرنگارا که آره این یک خطر براست جا خوب این چیزی بود که اصلا نداشت و کلن به ریخت خوش آمدید به آمازون دراک به آمازون مواد مخدر